دوری مبانی فقه نظام ساز کلاس استاد یحیی عبداللهی اللهم صل علی و آل محمد علیه و آله و خادم و و و و و, و, و, و فی سلام و خدمت همه دوستان و بزرگواران انشالله که تا جای کار خسته شده باشید و مفید واقع شده باشه و همه این تلاش ها و مجاهدت هایی که دارید تو این مسیر مرزی رضای خدا و حضرت ولیه اصر گرفته باشید هدیه کنید نسار حضرت حجت و در شهر قوم هستیم محضر حضرت کریم معصومه هدیه ای که انشالله مورد رز... این جلسات و ب... که گفته میشه وقتی که گذاشته میشه مورد رضای حضرات واقع بشه هدیه این کنید صلوات بر محمد عالمان موضوع بحث ما مبانی فقه نظامساز هست خب، یک سری بحث های مقدماتی از قبیل ضرورت، روش، هدف، اینا همه به تفکیک یا برخیش گفته شده یا برخیش گفته خواهد شد. خصوص بحث مبانی، مقصود از موانی، اگر بخواییم تشبیح کنیم مثل استوانه های یک ساختمان و ستون های یک ساختمان هست. یعنی ما از چه مفاهیم، نظریات، و مطالب بنیادینی استفاده می کنیم که این ساختمان نظری رو روی اون بنا کنیم مقصود از مبانی همینه یعنی یک بنایی میخواهد وزن خودش رو روی این ستونها استوار کنه نامشن مبانی یعنی مبنا قرار می گیرد که بنایی روی آن ساخته شود خب این مبانی ممکن است که از دانش‌های دیگری اخص شده باشه و موضوع بحث دانش فقه اصول، فقه نظام ساز نباشه یعنی خود اون مبنا موضوع علم دیگری باشد یا از موضوع مسائل علم دیگری باشد و جای بحث از اون، اثبات از اون و طرح بحثش در علم دیگری باشد. حالا یه علم بالادستی باشه یا علم مجاور باشه. به هر حال ممکن است از علم دیگری اخص شده باشه و در سیر بحث فقه نظامساز ازش استفاده بشه. لذا اینها رو باید به تفکیک مشخص کرد که کدام مبنا، از کدام علم و در کجای فقه نظامساز به کار میاد. مثل یک ساختمون، مثل برجی که ساخته میشه باید ستون‌های این برج مشخص بشه که هر ستون مثلا چقدر وزن ساختمون رو تحمل میکنه این ستون‌ها کدام هستن محلش باید مشخص بشه و اینکه چه مقدار میتونه وزن این ساختمان رو تحمل کنه و ساختمون روی اون استوار بشه این رو هم باید مشخص کرد. ما مقصودمون همینه که اگر ما بخوایم از فخ موجود به نظام نظامساز ارتقا پیدا کنیم چه مبانی رو نیاز داریم ابتدا باید مشخصیه که همین ساختمان فخ موجود چه مبانی دارد و اگر این مبانی مشخص شد به قدم بعد این است که چگونه در اونها ارتقا بدیم این مبانی رو اگر ارتقا بدیم به چه نحبی و به چه کیفیتی ارتقا پیدا کند که اون بنایی که روی این بنا مبنا ساخته شده باشه ارتقا پیدا کنه فرض کنید یه ساختمون دو طبقه رو ما میخوایم تبدیلش کنیم به یک گرژ ده طبقه باید ستونهاش رو مشخص کنیم اون ستونها الان تحمل یک گرژ ده طبقه رو نداره ولی باید شناسایی بشن تقوییت بشن مبناهای قویتری ستونهای قویتری جایگزین بشه برای اینکه که بتونه اون طبقات بیشتری رو تحمل کنیم این مبانی رو وقتی که ما میایم تو فقه موجود و از جهتی پس باید نگاه به فقه موجود داشته باشیم از جهتی هم باید نگاه به فقه مطلوب که فقه نظام سازه داشته باشیم دستبندی که میشه از این مبانی ارائه تحت سه محور کلی یک حالا سه یا چهار حالا بچ میشه 4 محورش کرد یک دسته دسته مبانی کلامیه و موانی دینشناختی دسته دوم دو مبانی است که ناظر به فلسفه شریعته و دسته سوم ناظر به فلسفه اصوله اینجا هم حالا هست در اختیار دوستانم قرار داده شده این فهرست سه دسته کلی ما میتونیم مبانی رو دسته بندی کنید مبانی کلامی، موانی فلسفه شریعت یا شریعت شناسی یا فقه خوش شریعه به تعبیر دیگری فقه اینجا به منای فهم عمیق و دسته سوم فلسفه اصول یا مبانی روشی یا فقه حلمان بهش بگید اولی رو هم میتونیم حالا به تناظره این بگیم فقه خود دین فقه خود دین فقه خل شریعه فقه خل یا بگیم مبانی کلامی فلسفه شریعت فلسفه اصول حالا به تفکیک یه توضیح عرض کنم و مشخص... سعیم کنم مشخص کنم که ما هر مبنا رو کجا اگر به کار بگیریم چه تأثیری در فقه خواهد داشت ببینید مبانی کلامی خب اصل و اساس بحث ما هست چون فقه میخواد به هر حال کشف از شریعت کنه کار کرده فقه یک است که میخواد شریعت رو بر ما استنباد کنه کشف کنه و به دست بیاره شریعت رو هم حتما اگر ما جامعه تر لحاظ کنیم یعنی دین حالا یا بخشی از دینه یا به نحو ارتکاز عمومی مساویه با دینه بذار دینشناسی اصل و اساس از فقه موجوده یکی از پیشفرزها ارتکازها و مبانی اصلی فقه موجود و فقه مطلوب این است که ما دین رو اساسا چی معنا می چه تحلیلی از دین داریم دین چیست تمام به شما بگم که فقه ما فقه نظامساز هست یا فقه فردیه یا فقه هر کیفیت دیگری بنابراین تحلیل ما از دین اصل و اساس برای این است که ما نسبت به فقه یه تحلیلی ارائه بدیم اگر ما دین رو حد عقلی معنا کردیم و به نحو خاصی معنا کردیم نمیتونیم انتظار فقه نظامساز ازش داشته باشیم پس دین دینشناسی تعریف از دین این که دین چیست به دین دینشناسی گستره دین هم مشخص میشه اول باید حقیقت دین مشخص شه، تا باید ببینیم این حقیقت دین دامنش و گسترش چقدر قلم روی دین مشخص میشه. و بحث از اینکه این دین با چه زبان و ادبیاتی صحبت کرد اینا بحثای دینشناسی به حساب مید. خب توی تلقی رایج از دین معنا می به احکام اخلاق اعتقادات میگن دین به معنای احکام اخلاق اعتقادات خود شریعت را هم دو تا اصطلاح داره دیگه گاهی اونقاد میگن شریعت به معنای خاص مصابیه همون احکامه احکام تکلیفی گاهی اونقاد شریعت را به معنای اعم به کار میبرن که میشه مجموعه احکام اخلاق اعتقادات مجموعه اینها میشه شریعت یا دین یا فقه اکبر اصطلاح فقه اکبر هم برای مجموعه این 3 احکام اخلاق اعتقادات به کار این این اصطلاحاتی که وجود داره ببینید این مبنای رایج رایج رایج باید ارتقا پیدا کنه یکی از موانعی که ما باید ارتقا بدیم در اون همین بحث دینشناسیه مبنای موجود این از که دین رو به شریعت معنا میکنه شریعت رو هم عمدتا به معنای احکام تکریفی میگیره اخیران بعضی ارتقا دادن شریعت به بالمعنال اعم یا فقه خل اکبر گفتن اخلاق و اعتقادات رو هم باید ذیل فقه بیاریم یعنی ما فقه نازر به اعتقادات و اخلاق هم باید داشته باشیم ما مثلا بگیم مبنایی که باید اینجا پایه‌گذاری کنیم برای اینکه به فقه نظام ساز برسیم باید فراتر از این باشه به این معنا که حقیقت دین تو عالم به نحو ثبوتی یعنی اون جریان هدایت و سرپرستی خداوند متعال به ولایت خداوند تمام میشه اگر ما بخوایم دین رو معنا کنیم دین یک حقیقت و باطنی داره اون حقیقت دین ولایت خداوند متعاله یعنی جریان هدایت و سرپرستی که خداوند بر همه مخلوقات نازل میکنه این میشه سیر صعودی دین عذر میخوام سیر نزولی دین یعنی خداوند از اون بارگاه قدسی خودش یک جریان هدایتی رو نازل میکنه که عباد بتونن ریسمانی دیگه ریسمانیه که خداوند فرستاده برای مخلوقات که به او تمسک پیدا کنم و بتونن رشد پیدا کنن هدایت پیدا کنن این یه سیر نزولی دینه یه سیر صعودی هم دین داره اونی است که من به عنوان یک انسان میبایست تمسک پیدا کنم حالا این ریسمان رو چنگ بزنم بیام بالا این که من چقدر به این دین اعتناع کنم انتفاد کنم تسلیم بشم این دیگه سیر دینداری منه پس دین یک سیر ثبوتی داره یک سیر اثباتی داره یک سیر نزولی داره یک سیر صعودی داره حقیقت دین فراتر از وجود منه دیگه اینکه من اعتقاد پیدا بکنم باور پیدا بکنم یا نکنم بحث دومی میشه بحث داری ولی قبل از اون یه حقیقتی تو عالم به اسم دین وجود داره چه من بپذیرم چه نپذیرم چه مؤمن بشم چه کافر بشم اون حقیقت نزولی دین ثبوتی دین ولایت خداوند اون‌هاست خداوند ولایتش رو نازل کرده الله و ولی الله از که یخرج آمن از ظلمات علند. که عباد رو از ظلمات به سمت نور هدایت کنن پس دین رو ما نباید از احکام اخلاق اعتقادات شروع کنیم تعریفش رو حقیقت دین حقیقتش اون ولایت خداوند متعاله که بر همه عباد جاری میشه حالا انسان ها اختیار دارن لایک راهفت دین میتونن بپذیرن میتونن نپذیرن اگر پذیرفتن تحت ولایت خدا وارد میشن ولیشون میشه الله الله و ولی و آمن اگر انکار کردن استکبار ورزیدن میان تحت ولایت تاخور پس معنای دین حقیقت دین به عنوان یک مبنای اولیه در دینشناستی فقه نظام ساز این است که ما جریان ولایت خداوند رو در تعریف دین به گنجانیم حقیقت دین ولایت خداوند مطالب البته این ولایت وقتی که تنزل پیدا میکنه تبدیل میشه به یک مناسکی، قواعدی پیدا میکنه اون میشه شریعت میشه اخلاق، اعتقادات، احکام در حوزه روح میشه اخلاق، در حوزه ذهن میشه اعتقادات، در حوزه رفتار میشه احکام حتما این تولیه من نیازمند یک مناسک و است، قواعدی لازمه که اون شریعته ولی حقیقت دین ثبوت دین به این شریعت نیست حقیقت دین اون ولایت خداوند متعاله خب اگر این مبنا رو گذاشتیم اون بعد محور دوممون که گستر دینه مشخص میشه گستر دین تابع این است که ما دین رو به چه معنا کنیم اگر به یه اخلاق و احکام و اعتقادات معنا کردیم گستر دین باید بریم ببینیم, ببینیم خدا کجاها حکم داده گستر دینم هم تابع همون احکامه یه چیزی که خیلی از این فکرها فشار میارن میگن شما بیخودی دارید فشار میارید به دین به فقه و میخواید فقه رو بکشونید همه جا در حالی که فقه انقدر تاب و توان و ظرفیت نداره همینه میگن آقا ما نگاه احکام میکنیم بحثای حکومتی یا اجتماعی توش نیست شما دارید بار اضافی دارید رو دوش فقه میگذارید این از همینجا برمیگرده که شما مبنای دین شناسیتون رو چی میدونید دین رو به شریعت معنا میکنید شریعت هم به همین احکام موجود رساله نگاه میکنید یا نه بحث رو باید با یک بحث کلامی شروع کرد اول بحث کنیم که دین چیست آیا دین همین شریعته یا دین حقیقت ولایته اگر دین شد حقیقت ولایت حالا بحث کنیم که این گستره این ولایت کجاست مرتبه بعد بحث می‌کنیم که شریعتش هم باید به طبعه او فهم شود اگر ولایت الهی شد حقیقت دین گستره دین هم میشه هر حوزه ای که حوزه اختیار و اراده باشه اینجا باید من اراده خودم رو تسلیم تسلیم ولایت الهی کنم اراده ولی رو در حوزه اراده خودم جاری کنم در نتیجه تحت ولایت او قرار می گیرم همه حوزه های اختیار و اراده ای انسان میشن گستره دین پس بحثی که امروزه بحثان فضای اجتماعی و روشنفکری و شبهات و اینا خیلی هست که نسبت دین با علم چیه علم دینی نسبت دین با حکومت چیه حکومت دین نسبت علم با تکنولوژی چیه با فناوری ها چیه با عرصه های مختلف با طب چیه ریشه بحث اینجاست که ما اول بگیم دین چیست تا بگم گسترش چیست تا بگم نسبتش با این مقوله های بعدی اجتماعی و تمدنی چی میشه. اگر دین رو به ولایت معنا کردیم ولایت هم تام و تمامه الله و ولی الله آمنو در همه ها. هر جایی ها اراده و اختیار باشه چون لا اکراحه دین دید هر جایی که اکراهی نباشه یعنی اراده من حضور داشته باشه چه فردی چه اجتماعی تو همه ارسه های زندگی بشری من باید ولایت خدا رو جاری کنم دین رو جاری کنم مناسکش رو هم باید به دست بیارم شریعت تا به ولایت چون گفتیم شریعت مناسک تولیه پس ببینید این دین شناسی خیلی تأثیر گذاره در این که ما فقه رو کجاها میخوایم؟ اصلاً به کار بگیریم. دامنه فقه، قلمرو فقه، حد فقه در بحث کلام بسته میشه. اینو برخی از اساطیر تأکید دارن که حد یک علم در خودمون علم بسته میشه. در علم بالا دستیش بسته میشه. علم بالا دستی فقه که موانیش رو بسته میکنه کلام. این بحث کلامی و دینشناسی که تقدیم کردیم دامنه فقه رو هم مشخص نکنه آیا فقه نظام ساز همه ارساهای حیات بشری رو دربر میگیرد یا نه این سوال جاش منطقا در علم کلامه که ما ببینیم آیا دین همه ارساهای بشری رو و حیات بشری رو دربر میگیرد یا نه و فقه هم به عنوان دانش کشف از شریعت بعد به تبع تو همه عرصه‌ها حضور پیدا کنه این سیر بحث خیلی مهمه از این جهت که خیلی ها پیش میاد شبهات روشن روشنفکری به نحو دیگری میخوان اثبات کنن که فقه حداقلیه و ما در کنار فقه نیاز به دانش های دیگری داریم دانش های بشری داریم عقل و تجربه و اینها هم باید دخیل باشه خب همینجا با همین مبنایی که روزی کردیم نسبت عوامل دیگه هم مشخص میشه دیگه اگر ما دین رو به ولایت معنا کردیم و ولایت هم تام و تمام شد همه ی عرصه های حوزه های اراده و اختیار انسان در بر بگیره در نتیجه همه ی قوای انسان باید تحت ولایت میشه عقل انسان محاسبه انسان تجربه انسان حس انسان همه اینها باید تحت ولایت لذا ما نمیخوایم بگیم عقل باید تعطیل شود همه جا نقل باشد همه جا وحی باشد خیر از طرفی هم نمیخوایم بگوییم که در کنار وحی و نقل به عقل و تجربه و عقلا و سیره عقلا و عرف و, و اینها هم نیاز داریم نه در ارزه هم مستقل از هم هم نیستند بلکه همه باید بیان تحت ولایت وحی و دین تحت ولایت الهی الله و ولی الذين آمنو در همه ارسان عقل مومنم باید بیاد تحت ولایت خدا حس مومنم باید بیاد تحت محاسباتشون سیره های اقلائیشون بناهات اقلائیشون جامعه سازیشون، تجارب بشری همه اینها هیچ کدوم استقلال پیدا نمیکنه، موضوعیت پیدا نمیکنه، همه باید بیاد تحت ولایت اتفاقا شکوفا شدن اینها به این است که بیاد تحت ولایت لسفت و سیره لهم دفعاین الاغول همینه هم و ولایت الهی میاد نوری است که میتابه و اقل رو اون فترت عقل رو شکوفا میکنه شکوفایی اقل اتفاقا در این است که تحت ولایت خدا قرار بگیره اگر از تحت ولایت خدا قرار گرفت اینطوری است که عقل چیز مستقل باشه میره تحت ولایت طاغوت لذا ما اقل مستقل از ولایت الهی نداریم از ولایت نداریم یا ولایت الهی یا ولایت تا و شکوفایی عقل از اساره عقل اساره این دفینه ای عقل بر این است که بیا تحت ولایت مثل یک دانه است که باید یه آفتاب بتابه این رشد بکنه جوانه بزنه تبدیل بشه به یک نهال و درخت تنومند هم در خود اون دانه باید یه اختزایی وجود داشته باشه همون نوری باید بتابه و الا این دانش شکوفا نمیشه نسبت ولایت و به تعبیر دیگری دین و دیگر قوای بشری اینطوره مثل یک آفتابی است که باید بتابد و اونها رو شکوفا خب بحث بعدی بحث زبان دینه آیا خداوند متعال با همین زبان بشری با انسان ها صحبت کرده یا نه زبان و ادبیات خدا و روش تفاهم او روش احتجاج او روش ابلاغ شریعت او متفاوته در دانش موجود فقه بل اتفاق محتقدن که خداوند لسان جدیدی ندارد به یک معنا این حرف هم درسته به یک معنا غلط این که لسان جدیدی خداوند نیابرده میگن چون لسانش لسان عربیه دیگه به لسان عربی مبین به لسان قوم هر پیامبری اومده صحبت کرد به این معنا اگر مقصوده که عربی صحبت کرده بله عربی صحبت کرده ما هم نمیگیم زبان دیگری غیر از عربی مثلا پای ریزی شده ولی اگر این باشد که با همون اسلوب‌ها ها با همون ظرفیت علم عرف زمان مثلا جاهلیت که اصر نزول شریعت بوده خداوند صحبت کرده این طور نیست خداون حتما اسلوب‌های تفهیم و تفاهمش و اینکه شریعتی رو بنا کنه در وجود انسان با او تفاهم کنه و یک زبانی رو بیاره که این زبان ابزار انتقال معانی باشه طریقیت داره دیگه زبان چون خودش موضوعیت نداره زبان ابزار انتقال معناست خب اون معنا باید ببینیم چه سطحی از معانیه تا بگیم این کدوم ابزار جواب میده برای من ابزار ناظر به اون هدف و قایت و کارویجهی که داره میسازن دیگه بعدینمون چه نیازی ما داشتیم چه هدفی داشتیم ابزار رو هم متناسب با اون بسازیم اگر عرب جاهلی زمان نزول شریعت در جزیره العرب ببینید چه اهدافی داشته چه معانی می‌خواسته بین خودش منتقل کنه یه ادبیاتی رو هم شکل داده آیا اهداف شارع متعال همون اهداف عرب جاهلیه که بخواد با همون ادبیات استفاده کرده باشه یا نه هدف او بسیار متعالی تاره هدف اشاره این است که همه انسان ها نه فقط عرف اون زمان رو، همه انسان ها در همه اعثار و در همه امثار در همه مکان ها تا روز قیامت رشد بده انتقال بده تحت ولایت خدا از ظلمات به سمت نور هدایت کنه خب یه همچین هدفی اصلا در مخیله عرب زمان جاهلیت نبود که بخواد یه ادبیاتی براش داره. تنظیم کنه در نتیجه اون سطح از ادبیات به کار شاره نمیاد البته او رو به کار میگیره به نحوه طببعی نمیشه صد سط در صد زبانی بیاره که متبان باشد اگر زبانی کاملا متبایم باشه تفاهم حاصل نمیشه ولی او رو به کار میگیره که او رو رشد بده برای پله اول خوبه برای قدم اول خوبه اما نه اینکه تا ته خطم هم همون باشه ما تا ته خط حرف مفهومی رو بخوایم بفهمیم باید ببینیم عرف زبان جاهلی چی میفهمیده بگیم به همون معناشاره شارع به کار برده فه های ارتقای یافته بعد رو از حجیت ساقت کنیم نه ادبیات زمان جاهلی برای قدم اول تفیم و تفاون خوب بوده ولی برای قدم های بعد باید از او عدول پیدا کنیم عدول به این معنی که تکاملش بدیم نه اینکه نقصش خوب خب در نتیجه تو خود زبان ادبیات زبان هم ما باید یک سیر تکاملی فرض کنیم یعنی شعره میخواسته ولایت کنه. اون ادبیات زمان خودش رو اخذ کرده ولی نه به اون معنایی که او رو به رسمیت شناخته باشه امضا کرده باشه برای تا تای خط یه تفاوتی که وجود داره بین امضا همینه آقایون میگن اون سیره اغلا رو شعره امضا کرده که نه پذیرفته تمام شده رفته. ما میگیم نه امضا نکرده. او رو منحل کرده توی دستگاه بالاتر. او رو به کار گرفته نه اینکه امضا کرده باشه و تایید کرده باشه برای تا تایخ. ولی او رو به کار گرفته برای قدم اول. قدم دوم رو ارتقا میده. لزوم مبنای امضا با مفهوم ولایت باید باسازی بشه و بهینه بشه. بازنگری بشه. مثل یک پدری که وقتی میخواد با پسرش صحبت بکنه مجبور ادبیاتش یه خورده تنزل بده اینطور هم نیست که س... کاملا بره تو چارچوب اون ادبیات کاملا بشه مثل یه برادری مثلا تو همون سن باش صحبت کنه اگه اینطور بشه دیگه اون رشد پیدا نمیکنه اگه کاملا رفت تو چارچوب ادبیات کودکان باش صحبت کرد موجب رشد کودک نمیشه اگرم کاملا تو مستوای خودش وایساد از اونجا صحبت کرد از موزه بالا صحبت کرد تفاهم حاصل نمیشه بلکه باید تنظل پیدا کنه به نحوی که او رو به نحوه طبعی منحل کنه توی ادبیات خودش شاره هم همین کار میکنه ادبیات کنه عدبیات از تنا... شریعت رو به کار میگیره برای که رشد پیدا بده خب اینم بحث زبان دیم فکر می کنم با این سرعت پیش بریم نمی رسیم به خیلی از 11, خب، بحث 11 و نیم دوازده خب یه خود زمان رو هم مدیریت کنیم بحث بعدی این است که دین گفتیم مجموعه ولایت و شریعت دو رتبه داره ولایت شریعت ولایت شد حقیقت دین شریعت شد نازله دین مناسک دین ظاهر دین با این مبنای دین شناسی میخوام برسیم به این که خب فقه میخواد چیکار کنه فقه نظام ساز میخواد دانش کشف از این شریعت این لایه دوم از دین که شریعت نام داره فقه یک دانشی است که طریق و ابزار استنباط شریعته میخواد کشف از شریعته در این صورت ما وارد محور دوم میشیم که شریعت چیست چه تعریفی از این شریعت داریم بالاتر بحث کردیم که دین چیست اون شد محور گفتیم دین دو محور ولایت شریعت یه خوردم لوازم بحث گفتیم که تعریف رایج از دین فقط به شریعت برمیگرده ما باید بگیم دین اعم از ولایت و شریعت حقیقت دین و شریعت به ولایت برمیگرد حالا اینجا میخواییم برسیم به... چون بحث ما بحث فقه دیگه فقه دانشی کشف شریعت باید ببینیم شریعت چیست بزنی اینجا محور دومی بحث باز میشه به اسم شریعت شناسی یا فلسفه شریعت یا فقه خوش شریعه یه سآل چرا بشنم این فلسفه فقه کی میتونه جواب بده آیا ما اینجا میتونیم بگیم فلسفه فقه بحث از فلسفه فقه خب چرا نمیتونیم اینجا بگیم فلسفه فقه به جای فلسفه شریعت؟ اینجا شریعت ناظر گفتیم پرگیتیت نیست؟ پرگیت دین نیست؟ من هم نمیگم بگیم فلسفه دین میگم بگیم فلسفه فقه. دانش که کسی فقه کسر شده از شریعت بله به یک معنا درست فهم چرا اینجا نمیگیم فلسفه فقه؟ چون فقه با شریعت فرقه این باید دقت باشه خیلی جا دقت نمیشه فقه یک دانشیست که ما او رو به کار میگیریم برای کشف از شریعت شریعت توی اینجا یه امر سبوتیه یه امریست که خداوند نازل کرده یه حقیقتی داره سبوتن حالا در لوه واقعه، در قلب نبویه، حالا کجاست کاری نداریم؟ اما بالاخره یه حقیقتی داره. ورای اینکه من او رو چگونه بفهمم، آیا به او دست فیدان میکنم یا نمیکنم، یه حقیقت سبوتی داره. من میام فقه رو به کار میگیرم که به اون حقیقت دست فیدان بکنم. حالا چقدر بتونم موفق باشم یا نباشم؟ اون دیگه معذر و منجزم دیگه بحث حجیت پیش میام. بنابراین نباید بگیم فلسفه فقه همان فلسفه شریعت هست خود فقه به عنوان یک دانش بشری خطاپذیر ارتقا قابل ارتقا و قابل تکامل خودش یه فلسفه ای داره اونجا باید بحث بخواییم که این دانش بشری مثلا روشش چیه موادیش چیه بحثایی که تو فلسفه مضافه به یک دانش بحث می اما اینجا بخواییم بگیم خود شریعت به عنوان یک عمر سبوتی که در لوح محفوظ وجود داره خداوند نازل کرده او چه خصوصیتی داره؟ به پنج. نه به معنای مجموعه احکام اخلاق اعتقادات چرا به معنای اهم میگیریم؟ آره سال چرا؟ دل بخواییه مثلا اعتبار کنیم به معنای اهم چرا شریعتو از این به بعد میخوان به معنای به کار؟ چرا؟ بله. سایر به بیان دیگه عرض کنم چون مبنایی که گذاشتیم اخت، این اختزار داره. مبنا اون چی بود؟ گفتیم ولایت. گفتیم دین یعنی ولایت. این ولایت هم باید همه عرصه ها رو پوشش بده. همه قواه بشری، قواه انسانی رو باید پوشش بده. حوزه روح و جسم و ذهن و رفتار همه اینها باید بیاد تحت ولایت. اگر اینطور باشه ما برای همه قواه انسان شریعت داریم. برای قوه اخ، حوزه روح روح و صفات روحیش یا عقل عملیش اخلاق داریم. برای حوزه ذهن و محاسبه و عقل نظریش اعتقادات و معارف نظری داریم. برای حوزه افعالش و جوارهش احکام عملی داره پس ما حتما باید شریعت رو به معنای عام به کار بگیریم چون اقتضای مبنامون اینه نه اینکه جلال اصطلاح کنیم یا اعتبار کنیم قرار داد کنیم خب بنابراین اینجا تفاوت هم مشخصه که ما چرا نمیگیم فلسفه ف. فقه یک دانش بشریه اونو بعدا باید توی مرتبه درامش صحبت کنیم ولی اینجا میخوایم بگیم این شریعتی که نازل شده و مرتبه از دین هست چه ویژگی هایی داره و این ویژگی ها را اگه خوب تنقیق کنیم و در هر کدومش بتونیم مستندش کنیم به منابع معرف دین، اینا بتونیم منابع مبانی رو ارتقا بدیم، منقح کنیم، بعد میتونیم روی این مبانی و ستون‌ها بنای فقه نظام رو به راحتی استوار کنیم. و الا وقتی وارد فقه نظام ساز می‌شیم، همه به ما خط چه یکی از این شبهات و اشکالات اینا پیش میاد. ریشش هم به این برمی گرده که اون مبانی خوب منقه نشده یعنی بسیاری از اشکالات و شبهاتی که تو زهنها میکنن تو فضای علمی هم تو و اینا میشود به خاطر عدم منقه شدن مبانی اگر این مبانی خوب منقه بشه دیگه توی بنایی که میخواید استوار کنید با شما مناقشه نمی خب این شریعتی که داره ساخته میشه یه بحث اولی این است که شن شاره چیست این شارهی که داره میخواد شریعت رو تشریع میکنه. شاره یعنی کسی که فعل تشریع رو انجام بود برس کردیم شریعت ظاهر ولایت هی. نازله ولایت هی. یعنی این تشریع شاره در چه مقام و منزلتیست؟ است چیه هدفش چیه من حالا مبنای فقه موجود میگم تا یه خورم ملموس چه این سآله من دم... اصلا دارم مورد چی سال میپرسم میبینی تو فقه موجود ما و اصول فقه موجود ما جای جای بحث شما میبینید مثال میزنن به یک مولایی که داره به عبدش فرمان میده ازا امره مولا به عبده مثلا تو بحث عوامر و نواهی شما به... کسرت این رو میبینید جاهای مختلف هم هست که اگر یک مولایی به عبدش فرمان دهد فلان کار کن این چه اختزاحاتی داره چه لوازمی داره ما همون رو میایم باسازی می‌کنیم در نسبت بین خودمون و خداوند متعال درسته این باسازی یک ارتکازی بوده یک مبنایی بوده پشت دست فقه و اصول موجود ما در طول سالیان اخیر حالا این ریشه های تاریخی داره من خیلی نمیخوام وارد ریشه های تاریخی بشم فقط اشاره ای بکنم به این که فقه های ما بالاخره تو عصری که میخواستم فخر و باسازی بکنن خود عصر ائمه گرفته تو عصر بعدی اینا فضای عبدالمولا خب پررنگ بوده فضای بردداری و اینا پررنگ بوده تو همون فضا فقه ما شکل گرفته اومده جلو خب کعنه فقیه نسبت خودش با رو تمسیل میکنه به یک نسبت مولایی که به عبدش داره فرمان میده بعضی جاهاب اومدن تصریح کردم گفتن شاره شن اختصاصی نداره، شاره هم احد امنال موالی شاره هم مثل یکی از مولا هست این برخی از فوقاهای بزرگ تصریح کردم. شاره شعن اختصاصی نداره، یکی از موالیه مثل یک مولایی که به عبدش میده لذا ما باید بریم همه مناسبات و دقایق نسبت مولا و عبد رو شناسایی کنیم، مرو بیایم بین خودمون و خداوند متعال پیاده کنیم، تطویق بدیم. خب این یه بحث، یه مبناست تو شأنشاره. آیا واقعاً شأنشاره شعر مولای عرفیه، یه مولایی که به عبدش داره دستور میده؟ یا نه، این یه ارتکازه ما این ارتكازه باید ببینیم ریشه‌اش کجاست؟ بشکنیم این ارتکاز. خداوند متعال وقتی که داره تشریع میکنه کنه بسیار فراتر از اینه اولا شعن اصلیش چیه؟ شعنش ولایته خداوند داره ولایت میکنه ولایتی که همون تو اصل دینه گفتیم شریعت نازله ولایته ابزار تولیه شریعت ابزار تشریع ابزار ولایت خداوند متعالی ما ولایت و فعل خدا میگیریم تولیه فعل عبد میگیریم خداوند که میخواد ولایت کند یه ابزاری هم فرستاده مناسکش هم گفته قواعدش هم معرفی کرده میشه تشری میشه شریعت هست قرزه از تشری ولایت هست شعن ولایت هست کدام ولایت ولایت مولای عرفیه یا ولایت است که الله و ولی ولایتی که تو قرآن هست با همه ای که داره از شعن شاره رو ما نمیتونیم مولای عرفی بگیریم. مولای عرفی مال یک ارتکازی بوده. یک نظام اجتماعی به اسم بردهداری بوده. یه زمانی الان هم تموم شده. الان هم دوره بردهداری نیست دیگه که. الان قانون اومده جاش. تو دنیا مدرن قانون اومده جای بردهداری. نظامات اجتماعی ساختارهای اجتماعی وقتی که وجود داره یه رئیسی مدیر یک مد اداره کلیه یک وزارت خونه ایه آیا نسبتش با کارمندش نسبت عبدالمولاست خیلی وقتا اداره هایی که ما داریم الان ای اینطوره ثبات و استحکام کارکونا بیشتر از مدیره مثلا یک کارکنه 20 سال کارکنه 20 سال مدیر دیده 20 این مدیرای عوض میشن رئیس امور میاد عوض میشه، عوض میکنن دائما اسنادت میشه ولی کارمند ثابته کارمندار کسی نمیتونه اخراج کنه مخصوصا با قانون کار موجود و اینا اخراجی به این راحتی نمیشه کسی اینا اخراجش بکنه ولی مدیر دائمن داره عوض میشه یعنی ثبات کارمند بیشتر از ثبات مدیره و خیلی تفاوت های دیگه از هم واردش بشی فضا فضای متفاوتیه به نسبت عبد و مولای عرفی که یه مولای به عبد عبدش دستور بده میخوام بگم اون نظام اجتماعی کاملا تغییر کرد اثری از اون نظام اجتماعی امروز باقی نمونده حالا ما بیایم کل شریعت رو با مبتنی بر اون نظام اجتماعی بفهمیم این یه ارتکازه آیا از دل این ارتکاز عبدالبولا فقه نظامساز برمیاد حالا عرض می‌کنم یکی از بحثای شریعت چناسی شماره پنجش خصوصیت شریعت نظاممندی شریعت یه ویژگی داره باید نظاممند باشه فقه نظامساز یکی از مبانش این هست که این شریعتی که داریم میگیم نظامی می دارد حالا من سوال می کنم اگر شما بردید رو چند خطاب مولا و عبد اصلا نظامسازی سازی ازش بیرون میاد شما گفتید این شریعت همون شریعتی است که یه مولایی به عبدش میخواد دستور بده خب مولا که به عبدش دستور میده کاملا دل بخاییه امروز یه چیزی میگه فردا یه چیز دیگه میگه امروز میگه برو این نونو بخرف فردا میگه برو یه نونو دیگه بخرف شما نمیتونی بگی نه حرف قبلی تو نقص کردی؟ به من گفتید نقص کردم که نقص کردم به هیچ وشت توی فرامین مولاب عبد نظاممندی، هماهنگی، انسجام، تسانخ شرط نیست ولی توی فضای قانونی هستا این ویژگی رو تو فضای قانونی داره اگر اومدیم مبنا رو به نظام قانونی عوض کردیم شنطن خاطب بشاره رو یکی از خسلت های قانون مدرن، قانون جدید این است که باید منظم باشه. نمیشه احکام قانونی که می نویسید صد روزایلش با هم تنازو ترفوت داشته باشه. قانون اول قانون آخر نقص کنه، قانون آخر هم قانون اول نقص کنه با هم تعارض داشته. باشه. نه. اغلا وقتی که امروز قانون می نویسن یکی از شرایط قانون است که هماهنگ باشه، انسجان باشه. ولی این شرط توی شعن نیست که این شعن مولای عبد پشتوانه فقه ماست دیگه امروزه از یکی از چیزایی که باید ارتقا بدیم که امروز بعضی از فقه ها رفتن رو شعن قانونی باشدادن بحث حضرت امام خطابت قانونیه هم تقریبا توی این فضاست بگم تو این کاملا چون خود حضرت امام جاهای متعدد تاکید داره که شعن مولا مولای عبد و عرفیه اونم داره ولی اون بحث خطابت قانونیشون داره به این خزانه می‌رسه و بعضی از فقهای معاصر که بحث رو کاملا دارن می‌برن تو اینجا که شأن شاره شأن قانونگذار است و قانونگذار حتماً باید انسجام و نظاممندی درش شرط باشد این می‌تونه پایگاهی قرار بگیره برای فقه نظامساز یه مبنای قرار بگیره برای فقه نظام ولی اگر شما مبنای خطاب شاره رو مخاطب شوره رو شأن خطاب رو مولای عرفی قرار دادی این از روش فقه در نمیاد ما که معتقدیم فراتر از قانونه اگر بریم سراغ همون خصوصیات ولایتی که توی دین گفتیم همون مبنایی که بالا پایریزی کردیم شعن شاره نه مولای عرفیه نه قانونگذاری عرفیه ولایته با همون خصوصیاتی که در دین هست در قرآن هست در روایات هست الله ولی الله از ما چه نیازی داریم که شعنش رو با شعون عرفی و اغلایی تطبیق بدیم بگیم همون شعن مولای عرفیه یا بگیم همون شعن قانونگذاری عرفیه حالا بعضی اخیران اینو میگم نه شعره شعن اختصاصی دارد شعره خداوند متعال است. همان الله هست با همه اصمانصفاتی که تو قرآن گفته که احدی از اون اصمانصفاتش قابل انتباقه با بشریت و مخلوقاتش نیست نه علمش مثل علم ماست نه حکمتش نه اشرافش نه حیمنش نه قدرتش نه حیاتش همه اینها شعن اختصاصیه البته نسبتی هم با علم ما دارد اونجا چطور میگیم اشتراک لفظی نیست درسته؟ علم است ولی نه مثل علم ما یه درکی ما از علم پیدا میکنیم دیگه که علم خداوندیه نسبتی داره در مورد شهنش آره هم همین بگیم بگیم خداوند متعال یه اختصاصی داره این که شهن اختصاصی میگم مبنای خیلی چیزایی دیگه هم میشه روش بیانش هم اختصاصی است، زبانش هم اختصاصی است، قواعدی رو هم که میاره اختصاصی است. اما نسبتی هم با قواعد تفی و تفاهم هم دارد اگر طبایون محض باشه همون نکته ای که عرض کردم تفاهم قطع میشه ولی همانم نیست یه مقام منزلت بالاتری، ریسمانی انداخته که ما تمسک بکنیم اروت الوزقا به این اروت تمسک پیدا کردیم میریم بالا رشد پیدا کنیم. پس یک سیر تکاملیه یه ولایتیه که داره واقع میشه پس جنبندی کنم این مخته از بحث رو به این که شعن خطاب شاره متعال یک شعن تأسیسیه و با شعون چه مولای عرفی چه قانونگذاری عرفی قابل من نیست شعن تأسیسیه این شاره متعال به اختزای حکمتش حتما اون شریعتی هم رو که عرضه کرده منسجمه نظامنده. البته کیفیت نظاممندیش هم بازم منحصر به فرده ها اینم بازم یکی از گزرگاه های اشتباهات و انحرافاتیه که بعضا رخ میده ما نیاییم تعریف از نظام را از دانشهای دیگه اخص بکنیم مخصوصا از عدویات های قربی. بعد بیایم منطبقش کنیم بگیم تو ادبیات سیستم ها مثلا منطق سیستمی داریم تو قرب منطق سیستمی بحث شده بیایم اینو بگیریم بگیم شریعت هم به این معنا سیستمی است. نگاه سیستمی به دین باید داشته باشید نه اگر همه اون شاره منحصر به فرد شد نظم و انتظام فقهش هم دقیق نظم و انتظام شریعتش هم مخصوص به خودشه و الا اگر قرآن رو شما بخواید با نظم بشری تحلیل بکنید یه کتاب کاملا به هم ریخته و بین نزم درسته اگر قرآن رو اگه با, با نظم بشری بنویسین خب اول مثلا میگفتیم یه فصل داریم در مورد توحید در مورد خدا زهر. یه فصل داریم در مورد نبوت یه فصل داریم در مورد امامت این رو منظمش میکردیم این همه تکرار داره این همه های به هم ریخته داره این همه بعضی اینو رفتن به سمت اینکه کار کنه قرآن منظم کنه در حالی که حتما قران یک نظم ای داره ولی این پیچیدگیش فراتر از نظم و قلائیه. ما باید بریم به سمت این نظم رو کشفش کنیم تر نرچه فقه نظام سازم که میگیم نظام مندی شریعت همه و انسجام شریعت اختصاص به خود داره این هم دوز مبانی ماست باید اینو کشفش کرد کم کم از سیر اجمال به تفصیل تو فضای شریعت از محکمات شروع کنیم بریم مثل همه که این نظم کم کم به دست بیاد نباید های دانشهای بشری رو میار قرار بدیم حرف شارعه رو بریزیم تو اون قالب ها این هم یه نحوه تحریفه این هم یه نحوه تفسیر به رعیه تفسیر به رعی پیچیدهی هم هست خیلی واضح هم نیست مثل تفسیر به رعیه واضح بخواییم معنای یک کلمه رو عوض کنی تعویل ببری نه تفسیر به تو روشیه مقیاس روش هم میشه تحریف داشت میشه تفسیر به رعی داشت که شما بیای قالب رو و نظام رو از یه جای دیگه بگیری بعد بگی شا... حرفا شاره هم برزی تو اون قالب بعد بگی شاره که قالب معرفی نکرده اینو واگذار کرده به خود ما اینم مبدع تحر... تحریف میشه پس شأن تخاطب شارع یک محور اصلی در بحث فلسفه شریعته که شارع که این شریعت را تشریع کرده است چه غرض و داشته بگیم قرار و ولایت بوده چون تو مبنای دینشناسی شناسی گفتیم تشریع نازله ولایت است خب اگر ولایت است من باید این نکته خیلی مهمه لازمه بحث من باید شریعت رو به نحوی بفهمم که اون ولایت محقق بشه چون ابزار ولایت بود دیگه من باید این ولایت جاری بشه در جامعه در همه عرصه‌های جامعه در نتیجه تشریع رو باید به نحوی تعریف کنم تو فلسفه شریعتم و در فقه هم به نحوی تشریع رو بفهمم که اون ولایت جاری بشه ولایتی که میخواد در همه ها در همه سطوح و مقیاس های جامعه و حکومت جاری بشه من برای این فرقه نظام ساز لازم دارم فهم من از شریعت باید ارتقا پیدا کنه شریعت باید بشه ابزار ولایت و سرپرستی خب یکی از بحث‌ها این است که شارع کیست اینجا فن جمله بحث کردیم شارع خداوند متعال البته ما بخشی از احکام رو داریم که جز سنن نبویه خداوند تفریض کرده به پیامبر اکرام. این یکی از بحث‌های بسیار مخفول در حوزه های علمی است. حالا دوستان ذهنشون گرم بشه روی همین بحثی پرونده ای گوشه ذهن باز کنید بحث فریزه و سنت احکام ما، اگر با هم یه دستونی از خود روایات به دست بیاریم، تقسیم بندی فریضه و سنت چون من احکام تکلیفی خمسه که ما تو روایت نداریم که احکام پنج تاست واجب است و حرام است و مکروه و مستحب و حلال یه همچین دسته‌بندی نه این دسته‌بندی فقهاتیه تو دانش فقه شه ولی بحث دسته‌بندی فریضه و سنت یکی از دسته‌بندی‌های خود روایات متعددی داره اون جاهایی که شاره خود خداوند متعال مثلا در قرآن اومده اینا فریز است اون جاهایی که تفویض شده به پیامبر اکرم اونا سنته و قواهی دیان داره تفاوت هم داره اینا تو بحث های حکم شناسی باید ازش بحث بکنیم یعنی اونجایی که وارد بحث شهن خطاب میشیم حکم شناسی یکی از بحث‌های اصلی ما فریض و سنته حالا اینجا توضیح دادم اونجا دیگه سریع‌تر ازش میگذرم حالا به این اسطلاح هم نگاه فریزه و سنت مثلا ما احکام نماز, صبح نماز میخونیم نمازهای چهار رکتی درکتهای اولش فریزه است درکتهای بعدی سنته بسیاری از احکام این دیگه برخی ها اشکال میپنم مثلا یا فلان چیز کجای قرآنه خب ممکنه به سنت نبوی باشه حرمت خمر انگوری خمری که از ان... انگور. این در قرآن آمده ولی حرمت کلیه مکنه مستکر... م... م... سکر آور مسکرات این به سنت نبوی ثابت شده این که همه مسکرات حرام باشد فقط ما تو قرآن خم رو داریم ولی اون نیست اینا همه روایت داریم براش پس باید تفکیک بشه فریزه و سنت پس میخوام بگم که دستبندی هم همه تفاوت پیدا میکنه شعره کیست خود خداوند متعاله بخشی از احکام به طبع فریزه خداوند متعال تفویض شده به پیامبر اکرم و قوانینی رو پیامبر اکرم کم و زیاد کرده کم نه زیاد کرده معمولا یا تفصیل داده یا توسعه داده از این دسته خب منابع شریعت چی میشه منابعم کتاب و سنته با اون مبنایی که گفتیم که دین ولایت عقلن باید بیا تابع ولایت از ما عدل عربعی نداریم عقل و اجماع و اینا همه باید بیا تحت ولد تحت وحی بعضی ها که گفتن اصلا یه دونه از کتاب و سنت هم نیست سنت مفص... کتاب مفسره به سنته بعضی علمه ها اینطور گفتن من احساس هم اینه که حضرت تلسیستاری هم تو بحثشون یه جا تمایل پیدا کردن به این من نقل قولی کردن که به این من که انگار تعییدم میخوام بکنم کتاب مفسره به سنت یه مبنا بیشتر نده که قرآن محور است اما به تفسیر اهل بیت اهل بیت تراجم وحیان دیگه مفسران اهل بیت شارع نیستن تو این مبنا تشریع نمیتوانن بکنن بلکه مفسران خب اگر مفسران در نتیجه منبع دین و مبنای شریعت هم میشه کتاب و سنت سنت نبوی به تفسیر روایات اهل بیت اجما رو که دیگه متاخرین کسی نمیگه منبع مستقل باشه ولی عقلو و بعضی هم همچنان میگن، عقلم هم مستقل نیست عقل ابزاری چرا عقل ابزاری میاد به کار ولی منبع دین به حساب نمیاد یک جریان ولایت و سرفرستی یه عقل هم باید بیا تا به ولایت قرار بگیره و شکوفا بشه اون موقعی که شکوفاشو تحت ولاد قرار گرفت فهمش حجت است پس این حجت بودن غیر از این است که منبع دین باشه ما یه خلتی میکنیم تا میگیم منبع دین کجاست میگم عقل حجت است یه اون روایت امام کازم که یه عقل حجت دا باطنی داریم حجت ظاهری داریم حجت ظاهری رسول است حجت باطنی عقل است میگیم حجت بودن غیر از منبع بودن است حجت است اما کی گفته مستقلا حجت است شما این روایت رو در کتاب اقل و جه دیدید اما دو تا کتاب جلوتر یعنی بعد از کتاب اقل و جه کتاب علمه بعدش کتاب الحجه تو کتاب الحجه اولین عبابی که وجود داره یکیش عنوان بابش اینه که لا یقوم الحجه الا به امام حجت جز به امام تمام نمی شود دو تا روایت کناره هم قرار بدید حتما باید حجت بیرونی یا ظاهری با حجت درونی یا حجت باطنی در تقویم و پیوند با هم باشن نه مستقل باشن از کجای اون روایت در میارید که حجت داخلی یا درونی یا باطنی باید مستقل باشه اینا باید مجموعه روایات رو ببینیم خیلی واضح میشه پس منابع شریعت هم مشخص میشه گستره و مخاطب شریعت هم ارس کردیم دیگه تابه و ولایت همه ای انسان ها در همه حوضه های رفتاریشون اونجایی که اراده وجود داره باید تابه باشن خصوصیات شریعت رو هم ارز کردیم یک نظام دو این از که باید شریعت را به نحوه ولایی ما بفهمیم از دل این شریعت باید ولایت و ورسی و اداره امر اداره جامعه در بیاد چون شریعت خودش ابزار ولایت بود کسی که میخواد ولایت اجتماعی بکنه که ولی فقی ولایت کار حاکم حکومت کارش ولایت اجتماعیه این ولایت اجتماعی هم باید شریعتی که به کار میگیرد در مقیاسی باشه که اون ولایت محقق بشود پس ما اگر فقه نظامساز میخوایم باید این دو خصوصیت رو درش لحاظ کنیم فقهی باشد که هم نظاممندی رو بتونه تأمین کنه و هم ولایی باشد یعنی امره ولایت، سرپرستی، هدایت، مدیریت، اداره اینا همه به یک معناست. این از دلش در بیاد. خب من سایم کنم تا یه رو دیگه تمام کنم که یه رو هم پرسش پاسخ بشه. شأن خطاب خب ما تخاطب رو بحث کردیم یعنی اون ارتباطی که بین شاره و مکلف وجود داره. که یه امر دو طرفه است دیگه یک خطاب کننده ای وجود داره یه مخاطبی وجود داره مخاطبش ما انسان ها هستید. این وضعه هم یه خطابی وجود داره شعن تخاطب که مجموعه ختاب کننده مخاطب و خطاب باشه رو احس کردیم که مولا و عبد ارفی نیست و این یه ارتکازی بوده در فقه ما مثلا یکی از آثارش رو احس کنم چرا بحث امر و نهی مهم شده در اصول؟ یه فصل عظیمی از بحث اصول ما امروزه بحث عوامر و نواهیه در حالی که به تعبیر یکی از اساتید ما وقتی می مثلا تو قرآن می بینیم می بینیم هشتاد درصد احکام ما به غیر از امر و نحیه ولله علناس جلبه کتب علیکم و سیاه اصلا امرو نحیه نیست با گزاره و سیاه های است. هشتاد درصد اینطوریه ولی چرا با این حال توی اصول ما اینقدر امر و نه مهم شده؟ این به خاطر همون ارتکاز عبد و مولاست یه مولایی رو فرض کردن داره به عبدش فرمان میده، دستور میده حالا بیان ببینیم این دستوره باید چیه؟ آیا امر اختزای و وجوب داره یا نداره؟ این اختزاش اختزای عقلیه یا اقلایه؟ رفتن برستاری کردن در حالی که ما از دل احکام اگر بیان می بینیم که سیاق تکالیف ما شعیدیش اصلا امر نه نیست این به خاطر اون ارتکاز هست کاری که تو مبانی میکنیم همینه این ارتکازها رو شناسایی کنیم و یک بازنگری توش بکنیم ببینیم با خود وحی و حقیقت دین چقدر سازگاره حالا می‌خوام بیایم سراغ خود این شعن خطاب که خود این ختاب یا اون حکم حالا البته بین خطاب و حکم هم تفاوتی وجود داره فعلا به اون نمی‌پردازم. اینجا بحث حکمشناسی پدید میاد که ماهیت این خطابی که شعر جعل کرده است این ماهیتش چیه؟ امر اعتباری اعتباری نیست انحلالیه قانونیه این بحثا اینجا مطرح میشه دیگه من نمیتونم وارد تک تک بحثای محتویش بشم بحث به درازان میکشه. ولی فعلا میخوام یک نظامی از بحث رو خدمت دوستان بدیم که پروندش رو باز نگه دارید در گوشه ای از ذهن شریفتون کم کم توی سیر بحث‌های مطالعاتی‌تون، درسی‌تون، پژوهشی‌تون سعی کنید اینا رو کامل کنید. ماهیت خطاب آیا اعتبار انحلال قانونی ولایه‌ی دامنه خطاب که این بحث دوباره طنه‌میزنه به همون بحث اینکه شریعت به معنای اخصو بخوام بحث کنیم یا شریعت به معنای آیا خطابات صرفاً باید تکلیفی باشه، امر نه باشه؟ یا ما خطابات توصیفی شاره رو هم باید لحاظ کنیم در فقه نظام ساز خطابات ارزشی شاره رو هم باید لحاظ کنیم شاره فقط اون ولایت و سرپرستی که خواسته و کنه از طریق احکام امر و نحی و باید و نباید نبوده این که ما احکام رو فقط بردیم روی باید و نباید و امر و نحی و احکام تکلیفی و شریعت بالمعنل اخست موضوع فقه قرار گرفته این همون ارتکاز مولا و عبد یه مولا ب... اذا امرم مولا به عبد امر و نه میکنه چون گفتیم فقه تابع حکم تکلیفی حکم تکلیفی هم اونجایی است که یه تکلیفی رو داره جهل میکنه که اگر نکنی عقاب داره جزا داره تعریف حکم تکلیفی نه دیگه یعنی یه الزامی داره یه الزام و التزامی وجود داره اگر ملتزم نشی معاقبی اقاب میشه ثباب و داره یعنی یک زامن اجرایی دارد ثباب و اقاب. اگر ثباب و اقاب نباشه میشه حکم ارشادی میگن حکم ارشادی هم شاره داره بله یه چیزایی هم امثال و قصص و اینا هم هست اینا بحثای ارشادی شاره ولی حکم تکلیفی یعنی جایی که ثواب قاب داشته باشه میگیم خب این تعریف ریشش به کجا برمی‌گرده به این که مولا را یک شاره رو یک مولایی دیدی که اذا امرم مولا به عبده. بعد امرو نکرد بعد میگه خب این مولایی یه جایی هم ارشاد داره نسبت به عبدش میگه ای عبد من این کارو بکنی به نفته حالا من الزامی نمی کنم ولی به نفعته که این کارو بکنی خیلی خوب دقت کنید داره قشنگ حد فقه جابجا میشه یعنی بحث بس بسیار گذاره نکته ای که عرض میکنم چون فقه ما مبتنی بر حکم تکلیفی شکل گرفته حکم تکلیفی هم مبتنی بر ارتقا از عبد و مولاست که یه عبد دو گونه مواجهه با عبد. یه مولاز میخوام دو گونه مواجهه با عبدش داره گاهی اوقات الزام میکنه میشه حکم تکلیفی نکنه چوبش میزنه عقاب و ثواب کویوت ارشادش میکنه میگه این کار بکنی بهتره میگه او اگر سیب بخوری هر روز صبح مثلا حکم ارشادی که مثلا از روایات میگن میگه شاره گفته اگر سیب بخوری هر روز صبح سالم میمونی دلدردتو برطرف میکنه آیا توی این الزامی در میاد که من حتما برم سیب بخورم نه میگن حکم ارشادیه میخوای بخور میخوای نخور ولی شاره داره ثمرهشو بهت میگه میگه سیب برای دل درد خوب است توصیف کرده گزاره توصیفی خطاب توصیفی ولی از این الزامی در نمیاد حکم تکلیفی در بین لذا از فقه ما هم خارجه ما تو فقه می خايم احکام تکلیفی بحث كنيم اينكه حالا سي برادر دل دست خوبه یا نه روايات هم داریم خیلی خوب روايات داریم ما نمیگيم روايات نداریم ولی حکم ارشادیه به درد فقه نمیخوره میگیم خب این ارتكاز از کجا اومده اين دستبندي تکلیفی ارشادی؟ بیشش برمی گرده به همون که شاره رو یه مولای فرض کرده این مولا دو گونه مواجهه با عبد داره گای اقاد تکلیف کنید گای اقاد ارشاد می‌کنه. اگر این شهن خطاب رو عوض کردیم جای مولای عرفی گذاشتیم یک مولای حقیقی که همه شعون عبد رو داره هدایت میکنه سلامتی او هم یک بخشیشه سلامتی مکلفین هم باید بیا تحت ولایت اگر نیاد میره تحت ولایت تاکود امروزه خیلی واضحه دیگه حالا شریعه کسی کرونا نیاد یا خیلی شد بحث سلامت، بحث تربیت، بحث همه آموزش، پرورش، همه این ارسها، ارسهاهایی که اگر امروزه شما مدیریتش نکنید جریان استقرا جهانی میاد مدیریتش کنه براش قانون می نویسه، براش سند دبیسم می براش مجامع المللی تأسیس می‌کنه و قوانین المللی تأسیس می‌کنه. الان نظام سلامت ما خیلیش تابع نظام سلامت جهانی دبلیو تی او میگن نمیدونم چی میگن تحت اونجا داره کنترل میشه. اینا دیگه امروزه خیلی واضحه. نیاز به اثبات نداره. بحث ما همینه. میگیم اگر مبنای شما شاره شد ولایت، شأن خطاب شد ول شأن مخاطب شد ولایت شارع ولایتی که میکنه خیلی وقتا از طریق های توصیفی داره ولایت میکنه کل قرآن داره ولایت می کند انسان را نه فقط احکام تکلیفیش بگید 15 تا مثلا آیات ال الاح... 100 تا آیات احکام داره نه کل قرآن طریق هدایت و سرپرستی خداوند متعال اون قصصش هم داره هدایت میکنه از قرآن از قصه گفتن ارشاد نبوده که اصلا ما ارشاد نداریم به این معنی همش منحل میشه تو ولایت بله این ولایت مراتب الزام داره ولی همه قرآن داره هدایت میکنه انسان قصصش هم داره هدایت میکنه خب ثمرش تو فقه نظام ساز چیه ثمرش این است که شما وقتی میخواید فقه نظام ساز بسازید چه تو حوزه اقتصاد چه حوزه تعلیم تربیت چه حوزه سلامت حوضه های مختلف آموزش، پرورش سیاست داخلی، سیاست خارجی وقتی که میخواید فقه نظام ساز بسازید فقط به احکام تکلیفی و آیات و الاحکام بسنده نکنید بسیاری از معارف از دل قصص قرآن به دست میاد نه حکم تکلیفی به دست میاد حکم توصیفی به دست میاد گزار های توصیفی به دست میاد گاهی اوقات حالا من بحثا نمیخوام دقیق ترش کنم دیگه فرصت هم نیست. الگوی تخصیص به دست میاد منزلت ها و شاخص های عبور از یک مرحله به دست میاد چون فقه نظامساز میخواد وضع موجود رو به وضع مطلوب نزدیک کنه از چه مسیری باید رد بشیم اینجا نیازه به برنامه داریم برنامه فقط باید و نباید نیست ببینید شما وقتی میرید پیش یک طبیبی اون طبیب چکار میکنه اول وضع موجود شما رو میشناسه اگه تونست ویزیت معاینه میکنه اگه نه میفرسه بره آزمایش بگیری آزمایش میاد وضعیت موجود تو رو آنالیز میکنه مینویسه یه برگه بهت میداد جواب آزمایش وضعیت موجودت رو نوشته مقابلش هم وضعیت رو نوشته مثلا نوشته فشار خونت باید انقدر مصلوب مال تو اینقدره قندت انقدر مطلوبه مال تو اینقدره موجود مطلوب کنار هم نوشته اینو میبری پیش پزشک موجود مطلوبو نگاه میکنه یک پشتوانه هایی داره اون پزشک یک دانش داروشناسی داره دانش سلامت شناسی داره میداند که سلامت انسان چه وضعیتی داره انسان سالم چه شاخص هایی داره باید قندش چقدر باشه چربی خونش چقدر باشه فشار خونش چقدر باشه همه اینا رو داره تو اینا رو یاد گرفته مبتنی بر اون دانش میاد برنامه به تو میده نسخه میده تجویز میکنه اینجا باید و نباید میاد میگه باید این قرص انقدر بخورید دو هفته بخورید بعد از دو هفته میاد بخورید دوباره بیا من ببینم دوباره نسخه جدید برات بدم فقه نظام باید به این مرتبه ارتقا پیدا کنه گاهی وقت ما میگیم باید از فقه نظام بگیم فقه سرپرستی حالا فرض اینه که اینا رو تفکیک نمیخوایم بکنیم ولی فقه نظام باید قابلیت فقه سرپرستی و فقه اداره تو کلام مقام معظم رهبری فقه حکومتی و فقه اداره هست اینا رو فعلا نمیخوایم جدا کنیم بگیم چند تا روی کن به یک معنا داریم به کار میگیریم با کمی تسامح، باید فقه نظام ساز قابلیت اداره و سرپرستی داشته باشه یعنی بتونه وضع مصروب جامعه رو ترسیم کنه این ترسیمش دیگه با احکام باید و است. نیست گزاره های توصیفی خیلیش بعد بتواند موجود رو شناسایی کنه یعنی بگه نظام اقتصادی موجود ما الان اینه. این, فا... این آسیب ها رو داریم. بعد بتونه برای رحیافت از موجود به مطلوب برنامه بدهد فقه نظامسات باید به این حد برسه فقه سرپرستی بشه فقه اداره بشه فقه حکومتی بشه الان فقه ما چند درصد این کارا رو میتونه انجام بده؟ خودتون قضاوت بده الان شما میاد میگید آقا روا حرام است خب قابلیت انجام داره ما بیام بانک رو یه دفعه مختل کنیم مثلا که رواه حرام از کل جامعه مختل میشه با قاعده حفظ قاعده حفظ نظام هم شما میاد حاکم میشه کنه ها نمیشه جامعه رو مختل کرد پس همینطور رواه رو انجام بدیم فیلم از باب ضرورت این به خاطر اینکه که فقه رو حد درقل فقه موجود باید بیاد بتواند راهکار بده برنامه عملیاتی بده که نه جامعه دوچار اختلال بشه و همی که یک برنامه داشته باشه روز به روز بهینه بشه و هم از اون نظام ربوی سرمایه‌داری اقتصاد سرمایه‌داری خارج بشه به نحو مطلوب نزدیک بشه به تعبیر حضرت امام نبض حوادث تاریخ رو باید فقه به دست بگیره نبز حوادث آینده رو بتونه پیش بینی کنه الان من گفتم ربا حرام است تولید پول اعتباری خلق پول حرام است اینو که قابلیت اجرا نداره خب قابلاتش رو نداره تمام ما وظیفمون رو انجام دادیم دیگه بقیهش باحت مدیرانه من فقط باید می دیدم که آیا خلق حرام است یا حلال است تمام شد دیگه یعنی کل مسئولیت و معمولیت دین تا همینجا بود دیگه بره کنار دیگه بقیه مدیران انجام بدن یا نه دین باید ولایت کنه سرپرستی کنه قدم به قدم بتونه جامعه رو به نحوی رشد بدهد که نه دو جامعه دچار اختلال بشه و همین که نه اینکه بره به یک سمتی که سمتی که غربی ها رفتن به سمت مطلوب باید بره مطلوب دینی این همون مبنای این است که ما گفتیم دین مبناش ولایت و سرپرستی است تو اینجا هم باید بیاد پس خطابات ما جنببندی ارزم تمام پرسش پاسخ خطابات ما این یک مبنای توی حکمشناسی گذاشتیم خطابات ما باید عام از خطابات توصیفی تکلیفی و ارزشی باشن خیلی جاها ها شاله ها رو گفته گفته این بهتر از اونه این اولویت داره منزلت این بالاتر از اونه, از اونه. حسنقوب ها رو گفته گفته این خوبه این بده نه توصیفه به یک معنا و نه تکلیفه همه اینها رو ما باید به کار بگیریم برای نظام سازیم اصلا بدون اینها امکان نداره نه نظام مطلوب رو اطوریم فقط با احکام تکلیفی صرف میشه به دست آورد نه اون برنامه ای که ما لازم داریم برای حرکت از موجود به مسئول همه اینها نیاز داره که ما مجموعه دین رو به کار بگیریم مجموعه خطابات رو به کار بگیریم اهم از تکلیفی توصیفی ورزشی یعنی کل قرآن کل قرآن رو ما باید و کل معارف اهل بیت رو بتونیم به کار بگیریم برای اینکه نظام اقتصادی به دست بیاریم نظام تعلیم تربیت به دست بیاریم نظام سلامت به دست بیاریم نه فقط آیات الاحکامش آیات الاحکام چیزی دست ما رو نمیده و کردم این که بقیه دین رو حدود 90 درصد آیات مثلاً ارشادی این یک ارتکازه ببینید شما ما یه نمونه ای از ولایت رو تو جامعه خودمون داریم یک شعله یه شمی از اون مهر تا فروغان خورشید شمس تابان ولایت ولی فقیه ماست ولی فقیه داره ولایت میکنه جامعه رو آیا فقط با امر و نه ولایت میکنه یعنی اون جایی که حکم الزامی حکومتی میده داره ولایت میکنه اصلا ولی فقیه چند سال یه بار یه حکم حکومتی بده اونم مخاطبش مسئولی نه. مثلا آقا فلانی معابنورت رو این کار بکن نکن بقیه جاها داره با گزاره های توصیفی گزاره های عرزشی. با اینها داره جامعه رو ولایت میکنه همه بیانات مقام معظم رهبری در جایگاه ولایته داره سحه ولایت میکنه همه ی سخنرانی هاشون همه ی نامه هاشون همه بیاناتشون همه اینها ولایت جامعه رو داره هدایت میکنه قرآن هم همینه قرآن همه قرآن قصصش، تمثیلش معارفش، احکامش هم همه اینها لازم است و این حالا البته بحث به این سادگی که من ازمه نیست لایه های هم از بحث داره خب به اختضای این دهد یک جلسه دیگه اینا ذهن شریفتون باشه کم کم اینا رو باید پیگیری کنید برسیم به این که این محدودیت هایی که فقه موجود رو مزیق کرده و نتیجهش میشه یه احکام رساله این محدودیت ها رو باید بشکنیم. کار مبانی فقه این جلسه ما همینه که این یک شمای کلی از این مبانی به دست بیاد ببینیم فقه ما رو چی بنا شده اون بناها رو بخوام تقویتش کنیم. این بناها الان بناهای نحیف و لاغری هن نمیتونه وزن فقه نظام ساز به اون مقیاسی که عرض کردیم رو به دوش بکشه اینها باید تقویت بشه بعضی از های پشتوانه این فرخه که این ها باید شناخته بشه شکسته بشه شناخته بشه و بعد شکسته بشه و بعد تکامل پیدا کنه صرف این هم که بشکنیم نیست دیگه بشکنیم کلا فرو میریزه باید تقویتش کنیم دیدید امروز مثلا حالا دیدید ساختمون هم فروریخت میان ساختمون ها رو تقویت میکنن چی بهش میگن مستحکم سازی می‌کنن میگن درسته این ساختمون داره تا پنج سال دیگه فرو میریزه خب راهش این نیست که من خودم فرو بریزم یکی دیگه بسازم میان مستحکمش می‌کنن. میان ستونهاش رو شناسایی می‌کنن، ستون‌ها رو تقویت می‌کنن. ستون رو... یه ستون‌های جدیدی بعداً ممکنه باید بزنن که بار این ساختمون رو تحمل کنه. یه همچین کاری لازمه. یه مهندسی معکوس باید بکنیم، ببینیم که ارتكازها و پیش‌فرض‌ها و مبانی پشت این موجود چیه؟ ما صرف اینی هم که بریم هی فقه نظام ساز رو تعریف و تمجید کنیم بازم این ارتباطه برقرار نمیشه چون مخاطب ما فقه موجود دیگه همه توی فضای فقه موجود علما و فضلات الله دارن نفس میکشن با این فقه موجود انس دارن ما میخوام به جای مسئله این فقه موجود ارتقا پیدا کنه به فقه نظام ساز. صرف این که بیام هی فقه نظام ساز رو تو بوغ و کرنا بگیم هی ازش تعریف کنیم که هم دیگه کلیات ابولبگاه شده همه جا میگن این هم کفایت نمیکنه کنه این است که بتونیم فخ موجود رو برسونیم به اون مستوى به اون مقطع، به اون مرتبه و این لازمه این است که این موانع خوب شناخته بشه و ببینیم که ارتکاس ها از کجا اومده چقدرش مستنده به وحیه چقدرش مستنده به ارتکاس های فقه ارتکاس هایی که زمانهی خضای بردهداری بوده مثلا متحصر شدن اینها رو باید شناسایی کنیم و بتونیم با اتکای به خود معارف دین کتاب و سنت اینها رو ارتقا بدیم. از جمله این بحثایی که عرض شد، تقدیم کردم خدمتتون. و این نکته آخری که خیلی اهمیت داشت همین بود که ما مجموعه ای از خطابات تکلیفی ارزشی توصیفی رو باید به کار بگیریم برای اینکه فقه نظام ساز ساخته بشه و تمثیلی هم که عرض کردم که خود مقام رهبری امروز که داره تو مقام ولایت و هدایت هست بسیار به این عمده ولایتشون با گزاره های توصیفیه میاد تشریح میکنه مثلا یا شما نرید خود اتکا بشید مستقل بشید رو پای خودتون بیستید یه جایی هم امرو نه میکنه ولی یه جایی داره کاملا توصیف میکنه میگه اگر این کار نکنید این عواقب رو ببینید ما در گذشته چقدر اعتماد به قرب داشتیم و چوبشو خوردیم میاد یه تنبه ایجاد کنم امر نه نیست تنبهه چه تجارب گذشته رو میگه چه حکایاتای میگه چه پیش های آینده رو میگه در واقع اینا همه توصیفه همه اینها به کار میاد قرآن هم که وقتی که داره ولایت میکنه مجموعه این گذاره ها پس ما باید دامنه خطابمونم توصیف کنیم مخاطبمون کیست مکلفمون کیست اینم یکی از مبانی جدیه یه دقیقه عرض کنم آیا مکلف ما ف... افراد انسانم انسان‌های منفردن خب پیش فرض فقه موجود ما این است چرا پیش ف... این پیش فرض به وجود اومده یه سیر تاریخی هم داشته نه این که فوقه ها رو کم کاری کرده باشن نه سیر طبیعی تاریخی بوده چون ما حکومت نداشتیم تا قبل از انقلاب حکومت دست فقه ها نبوده فقیه مبتلابهشی نبوده که مناسبات اجتماعی رو بخواد از دل دین استخراج کنه مبتلابهش افراد بودن یه فردی اگر بخواد با یه فردی معامله بکنه حکمش چیه؟ این فرد بخواد ازدواج کنه حکمش چیه؟ کننم مکلف رو فرد میدیده امروزه که ما اومدیم دین رو میخوایم توی سطوح بالاتر مقیاس بالاترری سطح اجتماعی و حکومتی میخوایم جاری بکنیم یعنی اون ولایت رو بخوایم جاری بکنیم مکلف ما هم ارتقا پیدا میکنه. مکلف ما فقط افراد نیستن. یک جامعه اگر بخواد معامله بکنه نظام قودش باید چگونه باشه ؟ این غیر از این است که یک فرد با یه فرد دیگه بخواد معامله کنه چه عقدی رو باید به کار اونجا وارد نظام اقتصادی میشیم. نظام اقتصادی مکلفش دیگه افراد نیستن. نظام اجتماعی، خود نظام اجتماعی. حاکمان تو یه سطحی هستن، نظام اجتماعی. تو نظام اجتماعی هر کسی به تبع و به حسب اون جایگاه و منزلتی که داره، یک نقشی رو ایفا میکنه مثل یک لشکری که میخواد به جنگه و یه جایی رو فتح کنه. این لشکر اینطور نیست که مثل احکام فردی مثلاً که هم واجبه همه نماز صبحه این لشکر هم واجبه باشه همه یک کار مثل هم انجام بدن منفرد از هم دیگه نماز صبح من به نماز صبح فلانی ربط نداره حالا اون نماز رو بخونه یا نخونه من وظیفه‌م اینه که بخونم همه بخونن وظیفه من ثابته همم هم نخونن وظیفه من ثابته ولی لشکر اینطور نیست لشکر یک کار به هم پیچیده منسجم متقو به همه اگر شما فرض کنید تدارکات لشکر که باید قضا درست کنه مختل بشه همه گرستگی بیحال میشه درسته اون فتحی که باید واقع بشه عملیات که باید واقع بشه انجام نمیشه تدارکات خوب کار بکنه ولی اطلاعات عملیات خوب کار نه چهار تا جاسوس در بیاد کل عملیات میره رو هوا اطلاعات عملیات حراست حفاظت همه خط مقدم همه اینها به هم متقومه یعنی آثارشون بر هم دیگه تاثیر و تأثیر داره نظام اجتماعی و فعل اجتماعی هم همینطوره سنخ حکمش اصلا عوض میشه سنخ حکمش و مکلفش و تکلیفش به نهبیه که اینها تکلیف ها به هم گره خورده اولا تکلیف یکسان نیست هر کسی به حسب تکلیفش متفاوته مثل لشکر. یکی تدارکاته، یکی خط محدمه، یکی اطلاع تنالیت کیف فعلشون متفاوته اما متفاوتیه که همه هنگه همدیگه رو کنه در نتیجه یک براینده واحد داره میخواد اون منطقه رو فتح کنه اینجا هم همینطوره، یک نظام اقتصادی وقتی که تکلیف می شود وزیر اقتصاد یه تکلیف داره معاونینش یه تکلیف دارن کارشناس های وزارت اقتصاد یه تکلیف داره قوه مغننه با قوه قضاییه قوه اجراییه اینا هر کدوم به حسب تکلیفاشون متفاوته تابعن سطوح مردم مردم که میان تجاریه وظیفه دارن اونایی که کسب و کار دارن یه وظیفه دارن اونایی که مثل ما اهل کسب و کارم نیستم اونایی یه وظیفه دیگه دارن ممکنه ما جهاد تبیین باشه وظیفه‌مون تو عرصه اقتصاد مقاومتی هر کسی به حسب یک تکلیفی داره مجموعه اینها یک فعل واحد منسجم رو رقم میزنه و همه هم مکلفن به یک معنا یه مکلف واحد داره ولی نظام مکلفینه این مکلفه ما هم نظام تشکیل میشه خب اینجا یه سری مبانی جامعه شناسی هم بحث میشه که آیا این نظام که جامعه هست این جامعه آیا وحدت داره یا وحدتش اعتباریه اینا ها که سر جای خودش باید بحث باشه و تأثیر هم داره تو بحث ما. ما اگر جامعه رو وحدتش رو اعتباری دونستیم کمان که بعضی از اندیشمندان ما مثل حضرت آتولا مصباح هستن اشون قالب اعتباری بودن وحدت جامعه است. مقابل از مرحوم علامه رو داریم و شایی متعریه داریم که نه وحدت جامعه رو حقیقی می دونستیم خب ما اگر بخوایم یک مکلف جدیدی فرض بکنیم به اسم حالا امروز میگن شخصیت حقوقی شخصیت حقوقی اینو رو یه مکلف نظام مندی فرض بکنیم که این نظام اجتماعی باشه تو سلسل مراتب حتما باید این وحدت روش رو بحث بکنیم که این وحدتش حقیقی هست یا حقیقی نیست اگر شد حقیقی میتونیم بگیم مکلف جدیده و اینه بحثم مفصل تریم داره دیگه پس ما همینجا تا این شعن خطاب رو هم بحث کردیم که موضوع حکم ما چی میشه؟ موضوعمون علاوه بر موضوعات خورده یا ما موضوعات اجتماعی داریم که موضوع خرد نیستن موضوعات اجتماعی موضوع کلان و توسعن نظام اجتماعی نظام اقتصادی یک موضوع پیچیده مرکب و سیستم گونه است نظامنده اینا فرق فرق داره با یه خمری که مثلا یک طبیعت واحد داره میخوام ببینیم حکمش چیه حکم یک موضوع رو به دست آوردن با حکم یک موضوع نظاممند رو به دست آوردن متفاوته اقسام حکم، مراتب و حکم از بحثایی که اینجا باعث باشه. حالا بحث مبانی فلسفه اصولیشم دیگه موند که اونجا محور بحث بحث حجیت. یعنی تا اینجا اومدیم شریعت رو و خطاب شریعت رو، حکم شریعت رو ترسیم کردیم. گفتیم اینه. از اینجا به بعد باید بحث فلسفه اصول می‌شیم. میخوام بگیم خب حالا این حکمی که ترسیم کردیم من چطوری میتونم کشفش کنم اینجا دیگه بحث معرفت شناسیه بحث معرفت منه من چگونه میتونم او رو فهم کنم به او دست پیدا کنم وارد اون سیر صعودی دین میشیم من میخوام دیندار باشم باید دین رو بفهمم تا اینجا بحث ما سبوتی بود اثباتی نبود میگفتیم دین چیست شریعت چیست شهن خطاب شاره چیست به نفع سبوتی فارغ از این که من بپذیرم یا نپ فارق از اینکه من بفهممش یا نفهممش اینا رو ترسیم کرد از اینجا به بعد وارد فلسفه اصول میشیم میگیم قواعد فهم این حکم چیست اینو حکمی که الان ترسیم شد به نحوه ثبوتی دامنش رو گفتیم خطابش رو گفتیم مقیاسش رو گفتیم موضوعش رو گفتیم مکلفش رو گفتیم همه اینا رو که ترسیم کردیم حالا چطوری میشه ف... به دستش آورد کشفش کرد قواعدش چیه تو فلسفه اصول بحث کنیم محورش هم بحث حجیته که من میخوام اون رو به دست بیارم باید بین خود, و خود من و خداوند مطابق به حجیت برسم ممکنه درست بفهمم ممکنه اشتباه بفهمم خب بنیان بحثای فلسفه و اصولی بر بحث حجیت که دیگه نمیرسیم به این بحث رو پردسیم یه دقائقی رو هم به سوال پرستش خواستا بپرستیم ممیرم. از آن یک و چند دیگر است یازده دیگر پرست و الله اللہ محمد و عالیتا خود خواهی میکنم دیگه یه خورد بحثات رکباری شد و طولانی شد و وای خوردم شاید نیاز به توضیح بیشتر داشت بحث محورهاش ولی در حد اینکه که یک شمای کلی از بحثات به دست بیاد تو ذهن شریفتون بمونه که تو مطالعات بعدی مراجعات بعدی انشالله ذهنتون گهر باشه یه پرسش تلنگری ایجاد شده باشه ان که این محقق شده دوستا در خدمت دوستان هستیم اگر نکته ای سوالی انتقادی بفهم تو کدوم کورت هست؟ کی میشه در کورت شود؟ کدوم نه استقبال داده قابل استثناست؟ مثلاً به رخ داده، آماده میشه؟ اما این تابعیت دارستن یا ندارد. دیگه میشه. چندباری مال افساده نه؟ فرمانده شریعیا. देखो خودش کامرده شده است. رو بردن. ولی با این شما دارید دائره فعالیتتون نیست. از مثلا که برنامه شما ثبت باشه، باید محدده بزنید تا قادر کرده و است که ما که فرهنگ تو ببین ما اصلا برای چی به لغت باید مراجعه کنیم تو عرف عرب باید برای چی مراجعه ما من میخوام اینی دینی که خداوند متعال نازل کرده است چیست؟ برای شناخت این دین من باید مراجعه کنم بخ... بهتری من باید من خود خداوند متعال خود دینه ببینم خود دین این دین رو چه تعریفی ازش داده حالا میخواد عرف عرب این باشه میخواد نباشه؟ عرف عرب خودشو باید ارتقا بده. یعنی, دین، یعنی خداوند نیمده تو قالب عرف عرب ببینه عرف عرب مثلا چه تصویری از دین داشته بره تو همون قالب دینش رو نازل کنه نه من میخوایم اینجا حقیقت شرعیه است اصطلاح دین حقیقت شرعیه است یعنی دین وضع جدید داره شاید بی ارتباط با اونم نباشه اونو میخواد ارتقا بده یعنی ارتقاضی که از دین داشتن رو باید ارتقا بده. اگه یه جایی دیدیم که تو قالب نمی گنجه میگیم اونو باید تغییرش بدیم. لذا خیلی جاهای از مخصوصا این بحث‌های کلیدی نگاه بعضی از اساتید گفتن مثل بحث مثلا مقاصد شریعت، مثل بحث عدالت، معنویت، آزادی، مباحث کلیدی دین اینا رو ما نباید بریم ببینیم عرف عرب چی می‌فهمه. عرب هر چی می‌فهمه شاره اینجا تاسیس داره حرف جدید داره حقیقت شریعت. است. باید بریم اصطلاح خود شریعت رو کشف کنیم. بسیاری از مفاهیم قرآن همینطورا. شما مراجعه کنید به عرف عرب اصلا معنا نمیشه. مثلا نور. بریم نور عرف عرب چی می‌فهمه؟ عرف عرب اینو می‌فهمه نور. الله نور و الارض یعنی این نور شهید شاهد بسیاری از مفاهیم اینطوریه. من میگم زبان دین زبان ارفی نیست همینه هم میگم شعر زبان اختصاصی داره <تصفيق> به یک معنی کل زبان دین حقیقت شعریه میشه <تصفيق> <تصفيق> اگر ببینید ما حالا نسبت نمیخوایم بدیم. نه. حالا همین دیگه. نسبت نمیخوایم بدیم. به نحو قضیه شرطیه میگیم. میگیم قاعده اینه. کاری به اون فرد نده. ما میخواد این تو مستاق باشه یا نه. ما در مستاقی اصلا بحث اگر ما بریم نظم، تعریف نظم و قالب بندی نظم رو از دانشهای قروی بگیریم بعد میایم اینا حاکم کنیم بر شریعت بگیم شعره هم حتما همینطوری حرف زاده این تحریفه من میخواهم میگم نظم و نظامش خداوند متعال یه نظام خاصی کم این که نظم قرآن خواسته درست چه در خود نظم خود آره نظم نداشته برسه شما یه جای دیگه بری بگیری باید بر... ممکنه تو قدم اول این تو... حاصل نشه ها ولی میگم باید بریم به سمتی که با یک سیر اجمال از تفسیر بریم به سمتی که نظم شریعت رو کشف کنیم حاکم کنیم بر نظم خودم میگم ما الان یه علم اصولی داریم به یه نظمی از شریعت پیدا دست بردی مدام درسته؟ این نظم, نظم تام نظم تمام شریعت کنیست کسی نمیتونه ادعا کنه که من تمام زوایع نظم شریعت رو فهمدم ولی توی این ارتقا محل بحثه برم به سمتی که نظم مثلا دانشهای دیگر رو حاکم کنم بگیم چاره نظم اختصاصی نداره اغلا ببینیم امروز مثلا قانونگذاری یا سیستم ها چه نظمی رو پیشنهاد میدن همون رو حاکم کنیم اینه یا اینکه نه بگیم خود شعاره یه نظم اختصاصی داره من کم کم برسم به نظم خود شعاره, شعاره مشکل ما همینه چرا کار نمید نه, شعاره, نه هر. شعاره خودش نظم داره یا نداره این نه لذا هم میگم اول باید شریعت شناسی رو بحث کنیم مقدمه بر... مقدمه بر فقه شریعت شناسی رو بحث کنیم همینه آیا شریعت نظم دارد یا نه؟ رهب سبوتی چه من بفهممش چه نفهممش خود شریعت خداوند بدون نظم شریعت رو نازل کرده من میکنم که کدوم سیستم سیستم خودشاره یا سیستم منطق فازی کلی مجموعه کلی مجموعه باید تحت مهوریتش نظم خودشاره باشید من قبول دارم اما به اون به عنوان نظم طبعی کمانی که گفتم وقتی که شاره در جزیره العرب میاد ادبیات و منطق فهم اون عرف رو به نحو طبعی منحل میکنه تو ادبیاتش که تفاهم حاصل بشه یا مثالی که دادم اون پدر میاد ادبیاتش رو تنظر میده که اون بچه به فهم رشدش بده به نحو طبعی میتونیم منطقهای بشری رو به کار بگیر به نحو طبعی ولی باید محور اون منطق منطق خودشاره باشه که ما رشد پیدا کنیم ولی اگر بخوام محور رو منطق بشری قرار بدیم باعث تحریفش شاره میشه هم اینجاست که خودشاره منطق داره یا نداره نظم داره یا قرآن نظم داره یا نداره آیا نظم منطق سیستمیه؟ یا یه نظم خاص دیگه آها ما باید اینو کشفش کنیم اینو نظم محور قرار بدیم اون نظمی که اصولیون دارن نظم اونایی که شما تو ذهنتونه اونا برای قدم اول لازمش داریم یعنی مثلا میگم ما میخوایم بفهمیم که مجموعه معارف قرآن در موضوع مثلا انسان چیه؟ انسان شناسی شارر رو بفهمیم معرفت شناسی شارر رو بفهمیم جامعه شناسی شاره رو بفهمیم بفهم. فلسفه تاریخ شاره بفهمیم ما لازمه بالاخره اول لغت عرب و بلد باشیم برای قدم اول الفبای عربی رو لازم داریم یا نداریم لازم داریم حتما من منکری نیستم که باید ادبیات عرب بلد باشیم اما آیا این کفایت می‌کنه یعنی کاملاً شارع تو قالب ادبیات عرب حرف زده نه من میگم برای قدم اول کافیه ولی قدم‌های بعدی رو باید از اون رد عبور کنیم تکاملش بده برسیم به یه نظم‌های کاملتری که خودش شارع دارد. حقیقتا لازمه که حتا همین نظامای اینا باید بیاد اینا محور قرار نمیره این نظام ها رو ما باید آیا باید از شریعت نسخه براش بدیم حتما باید بدیم آیا همین نظام غربی رو ما باید بیایم حاکم کنیم بر شریعت و فقط موادش رو پر بکنیم اینم قبول نداریم که بگیم همین نظامی اقتصادی اخ... فرز مثلا میگم بانک اسلامی که انه بانک رو به با عنوان یک مهور نظام اقتصادی فرض گرفته که ثابته حتما حالا اسلامی غیر اسلامی داره من میگم نه شما ممکنه توی یه نظام اقتصادی باشه اصلا یه بانک هم نباشه فرض نکن، حتما بانک یک یک جزوه لایتغیره اینو مثال زدن برای همون نظامش هم همینطور نظام اینطور رو... نیست که اون نظام رو از غرب بیاریم بگیم همون نظام اقتصادی فقط ما اسلامش میکنه نه من میگم خود نظام هم باید مستند به دین بشه آیا تحت ولایت خدا قرار نمیگیره رشد میکنه تجربیه. تجربه تجربه غربیاس دیگه بعد رنسانس تجربه شده آه، انسان مؤمن یا کافر جوامع ببینید تاریخ داره دیگه وقتی تو نمونه فرض می‌بینی نه این انسان غربی بعد رنسانس هم اتفاق افتاده تو رنسانس هم خدا رو کنار گذاشتن تحت ولایت شیطان بابا شده. باشه هم مبادشون باطل هم نظمشون باطله هم شعریشون باطل هم نظمشون باطله دیدید آقای میگن آقا نظم غربی که خوبه نظمش رو بگیریم روان کی روش تحقیقشون باتل. آره روش تحقیقشون فلسفشون روش تحقیقشون تابع فلسفشونه فلسفشون هم باطل انسان شناسیشون معرفت شناسیشون همشون باطل باطل دیگه یعنی معرفت کجا معرفت حق ما میگیم معرفت حق معرفت ها همینجا معرفت هم هم دیگه. الان شیطنت های باطل واقعه یا واقعه نیست واقعه نیست توهمه الان باطل تمدن قبل شیطنت میکنه تم... اینا توهمه یا واقعه میشه همه وقایه رو داره مدیریت میکنن شما میگه واقعه نیست توجه اینا دیگه با... اینا بیس پیش... اینا بحث فلسفه است دیگه که میگن شر آدمیه. تای بحثتون بر اینه که شر آدمیه. ما میگیم نه اینا کجا در این پیش داره داره. که من میگم رو مبانی واسه شر آدمیه پیش فرزشی بوده. ببینید ریشه بحث کجا بوده؟ شر آدمیه به قاعده سنخیات برمی‌گرده. گفتن خداوند خیر محض است. حتما هرچی ازش ساده میشه خیر محض است. پس کل عالم وجود خیر محض است. قاعده سنخیات درسته بین علت و معلول باید سنخیت باشه اگر علت خیره معلول هم باید خیر باشه ما میبینیم از کجا بایدیم خدا... اصلا قبول نداری میگم خداوند تو عالم شر رو هم ازن داده است کلن نومت دو ها اولا و ها اولا. به کفار اجازه شرارت داده است جریان ولایت جریان ولایت و رضای خدا یه جریانه جریان اذن خداوند یه جا خداوند به شیطانت و کفر طاغوت می دهد، ولی رضا نمیدهد رضا نده رضا مال ولایت الله ولی الذین آمن ولی ولذین کفر و لزین و طاغوت به اونا هم اذن میده تحت ربوبیت خدا خارج نشدن آیه اول آیت و آیه 3 الوهیت و ربوبیت زیلش دو تا ولایت چک میگیره حالا اون ولایت طاغوت خداوند اذن بهش میده یا نمیده حتما اذن میده تحت... تحت ولایت خدا خارج نشده، ولی از تحت ولایت خدا خارج شده ما این تفکیه کار رو نکردیم مشکل ایجاد شد. آیا واقع می شود یا نمی شود؟ حتما واقع می شود ولایت اولیات آقود واقع نمی شود؟ نه بلکه هم حقیقت آلم معنی چی؟ نه شما قاعده شراب رو شما قاعده شراب سازی قانون شراب سازی قانون این که ما بریم بمب اتم بسازیم نه یه بمبی بسازی که هیچ قرضی جز شرارت نداشته باشه. نه خود علمش هم حقه. علوم انسانی واقع میشه یا نمیشه؟ همش توهمه علوم انسانی غربی که ما میگیم فاسده همش توهمه هیچ کدوم واقع نیست یا نه واقع اصلا این فرض ببین این مبنای معرفت شناسی ساز ما واقع رو هدایت میکنیم تام کو راه نشد. من میذارم اون ترازو میذارم میگه 100 علم کارش تصرف در واقع ببینید. اینو درستش کنیم حل میشه. اون چیزیش شما نمیخواید اینی که من از این مثلا هزار تا از این گزاره ها دارم واقع. یه جوری تاثیرش می که برایش تغییر میشه اما اینکه خود این که من گفت صدگیرم که این خطا ای برستونیشه تو این که نیست که. درست صد گرم گرم از کجا اومده؟ ماجا کجا ولیثه. منم اول لیتر میگم لیتر از کجا اومد؟ هر چی. پیشینه. تو شما یه, م... یه مفهوم از یه دانش بشری عکس می‌کنی، اینجا استفاده می‌کنی. من میگم گرم تو یک نظام مفاهیم معنا داره. لیتر تو یک نظام مفاهم اون از کجا اومده؟ خب میخوام ببینم خب میخوام بگم این یه نخی از یه رشته ایه. شما اینو میارید توجه نداره که یه نخیه پشتوانه داره یه پشتو... یک نظام اصطلاحات داره یه نظام کارشناسی داره یه نظام ارزشی پشتشه یه اصطلاحشو میارید میگه من صد گرم کاری ندارم با چیز دیگه فقط 100 گرم من میگم این یه اصطلاح گرم 200 سال پیش گرم نبوده اصلا سیر. سیر. هرچی هر او... چی شما یه پشتوانه مفاهیمش هم بیار یه پشت دستش یک نظام اصطلاح نظام ارزشیه اونا میاری اینجا به کار میگیری توجه به اون پشت دستش نداریم ولی بریم اونجا رو ببینیم میبینی یک دانش اون دانش بعد از پیش اومده یه ارزش های مادی براش حاکم شده انتظایی نگاه نکن ما حرف هم همین میگم انتظایی نگاه نکن ما باید بریم به سمتی که این مراحل رو اگر تهیه بکنیم به دانش های اسلامی هم میرسیم الان نداریم چاشکی بگیم ما نمیدونم چاشکی ببین قبل صح حق نیست من میگم نمی برگردیم بگردیم بگو کجا قلب است کجا شش است کجا کبد است این دیگه دیگه خب چرا پس دوتا تا تپ ایجاد شدن تپ سلولی و تپ گیاهی البته اینکه که نباشه نه خوام بگم که وجود از نه وقتی که دانش میشه یعنی نظام دیدی یه یک دیسپلینه دیدی که هر هر هاش... آفه هر دانشی از هر از دانش آن هم میتونی مطابق دانش مثلا دانش تبکیهایی مطابق بابا دانش داره دانش تاکتیک های حکم داره نه حکم که دانش